اوچه که ما همیشه بر روی او تکیه کردیم تأکید کردیم و از بوندندان معتقدم که برای کشور، برای فرهنگ عمومی کشور یک ضرورت است عبارت است از تکریم و احترام گذاشتن به کار و کارگر منای عام می دارد کارگر امام رضوان الله علیه می بودن، پیغمبران هم کارگر بودند همین جوره در مجموعه شما هم مدیرانتون فعالانتون برنامه‌ریزهاتون کارآفرینانی که زمینه گسترش کار و اعتلای کیفیت کار رو فراهم میکنند تا آهاد کارگران ما کارگران تحصیل کرده، کارگران ماهر، کارگران مجرب تا کارگران ساده، همه کارگران. نفس کار احترام دارد. نفس تحرک و تلاش در جهت درست دارای احترامه. این نگاه اسلامه. همه چیز، بر پایه این تکریم و احترام بایستی شکل بگیرد اگر ما چیزی به نام حقوق کارگر و منزلت کارگر تعریف میکنیم بر اساس همین احترام به کار و احترام به کارگر باید باشد